امروز داشتم تحقیقاتی درباره مایه و اینا می کردم. یک‌زفه به بحث تصادف متوجه واژه گوهر شدم بله و این خواستم رابطه این رو با مفهوم مایه در فرهنگ ایران مشخص کنم یادم اومد که فردوسی در یک جو بحث این گوهر رو نژاد و هنر رو کرده درسته آره اون وقت بود اومدم گفتم اول این متن رو پیدا کنم درسته. بعدش روی این دقیق بشم این بود که این متن رو پیدا کردم حالا من این متن رو میخونم بله بله این ابل این متر رو با دقت گوش بدیم ببینیم چی هست بله درسته؟, درسته آره در این متن میاد که هنر با نژاد است و با گوهر است هنر با نژاد است و با گوهر است یعنی چی هنر و نژاد و گوهر این سه تا واژه سه تا واژه و سه تا مفهومه بله اون وقت این میگه سه چیز است و. هر سه به بند اندر است به بند اندر است یعنی به هم پیوست است یعنی اصلا yani جد جدا نپذیر نیست یعنی اینا به هم پیوستگی داره حالا میخواد پیوند اینا رو پیدا کنیم درسته بله هنر کی بود تا نباشد گوهر یعنی چی؟ یعنی تا گوهر نباشه هنر نیست بارگرد نجاده بسی دیدهی بی هنر یعنی چی؟ نجاده؟ بسی دیدهای خیلی اشخاص با هستن هستم که هیچ جناری ندارم درسته گوهر اون که از فر یزدان بود اه. گوهر اون که از فر یزدان بود نیازد به بد دست و بد نشده اینجا حالا گوش بده اینجا اینجا گوهر رو از فر یزدانی میدونه فر, فر یزدانی یه واجه یه اصطلاحیه که در دوره زردوشتی ها به وجود میاد درسته فر از در اصلش خبر بوده درسته حالا این خبر نه معلیشه ما درو این فکر دیگه بله. معنی این رو ما از خود در حضورش میبینیم معنیش گد من من است گد من یعنی من یعنی مایه شیرابه گد گدا همون واژه جد و جد و زده یعنی شیرابه و سمخ چیزا شیرابه چیزا حالا در اینجا وقتی که اینو دیدیم یعنی شیرابیه چ... چسبنده چیزها یعنی چی فر اون چیزیه که به هم پیوند میده متوجه شدی بله فر کچی فر داره که بتونه چیزها رو به هم پیوند بده انسانها رو بتونه جامعه رو به هم بتونه پیوند پیوند بده این خیلی مفهوم این مفهوم اولیه‌ی جمشیدی کیانی بوده یعنی در دوره اولیه ایران فرهنگ ایران که مفهوم فرد رو دقیقاً به کار می‌برن انسانی فرد داره بانه. که می‌تونه در اجتماع یه نوع تفاوهم اجتماعی ایجاد کنه بعد آقای جمالی فرد ایزدی با فرد کیانی فرق می‌کنه همین اینجا این نکته رو بحث کنیم اینجا فردوسی اون تکسی رو که جوروش گاز داشته این طبق مفهوم طبق روال زردوشتگری تفسیر شده یعنی چی؟ یعنی دیگه گوهر فر یزدانی شد. فر یزدانی یعنی فر کسی که احورو مزداده در صورتی که فر دقیقا فر یعنی کسی که توانای ای اینو داره که اشخاص رو میتونه پیغم بده از این بالاتر از این بالاتر میبینیم در داستان کیومرث بله. وقتی که این تخمه کیومرث روی زمین ریخته میشه ریواسی پیدا میشه گیاه ریواس نرم ماده است یعنی هم نر خودش هم ماده هم ماده است بنابراین برای این خاطر میگن ریواز میگن انسان به صورت ریواز یعنی چی؟ یعنی هم آدم بود هم هوا محبا. یعنی محبا. هم مشی بود هم مشیانه محبا. یعنی این برای خود اینکه جفت آفریننده این ایده اولی ایران بوده ولی زردوش دیگری مخصوصا این واژه ریواز رو میاره چون که میدونه اشخاص نمیدونن ریواز نرماد است درسته متوجه نکته شده بله بله آره. این خیلی نکته حساسیه اینه که اما نکته حساسی که اینجا میاد میگه بین این مشی و مشیانه فرق بود یه فرق بین اونها بوده آره فرق بین اونا بود یعنی چی یعنی این دوتا را خبر نه اون شیری بود که این دوتا را رو با هم پیوند بشه پیدا می داد درست حالا بعد ببین از اینجا ما متوجه میشیم که فرق یک چیزه جوهری و گوهری هست ربطی به مسئله یزدانی و اینا نداره برداره. اون چیزی اصلی هست که بین نر و ماده میده تا آفریننده درست. پس چیز بالاتری بوده اینی که در تمام دنیا این اصل فرد اون چیزی که چیزها رو به هم پیبند میده اون اصلی که اجتماع رو به هم پیبند میده این اینجا چون که پردوسی متن زردشتی رو در دست داشته میگه گوهر اون که از فر بود حالا در طورت گوهر این نیست متوجه حالا اینجا نقطه از خود همین میگیریم ببین میگوید که حالا هنر رو نجاد گوهر گوهر تعریف گوهر رو کرد نژاد رو کرد که بسی دیده بی نژاد نجاده بسی دیده پس هرار تابع نژاد نیست درسته. آره پس این نژاد کیست نجاد میگه نژاد آن که باشد ز پدر یعنی نژاد اون تخم نوتم پدره درسته اینی که میگن نژاد فرانی کیه یعنی پس پدرش بکی برمیگه برمیگه اینی که میگن گوهرش کیه این رو البته جار رو ما بحثون کرد یعنی مادرش کیه؟ مادرش کیه اینجا رو مسئله گوهر چون که در فارسی جا افتاده بوده در زبان فرهنگ ایرانی نمیخواد این مسئله مادری رو در بیان بیاره. حالا چرا؟ حالا این گوهر حالا خیلی معنای عمیق‌تر میره میکنه نژاد اون که باشد و تخم پدر سزاد کاید از تخم پاکیزه بر میگه صداوار است که از تخم پاکیزه بر حاصل و محصول ایجاد بشه. درسته؟, درسته. یعنی از حالا مسئله این نجاد رو گفت گوه، گوهرم البته اینجا به رسم در راستای زردوشتهی گفت اون که از فره یادان حالا میرسیم به هنر حالا حالا میرسه به هنر درسته. هنر گر بیا موزی از هر کسی یعنی درسته به کوشی و پی چیز رنجش بسی هنر رو میدونی با کوشیدن و از درنج وردن. اما چی؟ پلوی کسی نیست از هر کس از هر کسی میشانه آره رو افق بازه شما به از هر کسی هنر رو یاد بگیر بیا بی موزی درسته این کاری نیست که از این و اون خجالت هم نداره از هر کسی دیگه هنری داره میشه میشه آموخت بیاد آموزه آره درسته. حالا بپن اینجا این هنر رو گوهرانزاد و رو تقریبا تعریف کرد ولی مسئله ما اینه که این گوهر آن که از فر ریزدان بود، این فر ریزدان اینجا راستهای زردوشتی پیدا کرده معنای اصلیش پدیدار نیست در این بیت بعدی این معنای اصلی گوهر پیدا, گوهر میشه. پیدا میشه چی میگه؟ میگه از این هر سه گوهر بود دار. از این هر سه گوهر بود دار. که زیبا بود خرعت کردگاه گو این نکته اساسی گوهر هر بود مایه دا مایه اساسا به ماده میگن مایه مایه این سر پستانهای های در سجستانی و اینها در سیستانی در گویش های مختلف مایه رو به این انگشتای سر پستان میگن و مثلا اون بالای این انگشتای پیستون میگن, میگن میگن میگن خونه یعنی جایی که مایه هست یعنی عملا شیر درسته متوجهی عملا ش... چون که اثر این سر پستان شیر بیرون میاد سر انگشت درسته ولی مایه اساسا به مادر گفته میشه واجی مایه اساسا به مادر گفته میشه اون چیزی که همه چیز رو تخمیر میکنه اون شیرشه درسته خونش و بعد شیرش و اساسه اینه که مسئله این یک دفعه متوجه میشیم که این گوهر از همه اینا برتره آره مایه اصلی تحول رو داره و این درست از مادره حالا ولی اون چیزی رو که اینجا طرح حالا ببین اینجا پس متوجه این شدیم که گوهر چی هست درسته تا اینجا ولی اون چیزی رو که ما متوجه ها را میشیم که خیلی مهمه اینه که خب پس کلمه گوهر از چی پیدا میشه خب ببین نکات رو حالا پیدا کردیم یعنی اون کنسپشن که اینها از گوهر داشتن از نژاد داشتن از خونا برای ما در این شعر روشن شد ولی میپردازیم به خود واجی گوهر چون که ما بایستی اول کاری که میکنیم در تحقیقات اینه که اول بیایم. مشخص کنیم که اینها نیاکان ما این اولین انسانها راجع به یه مفهومی چجور فکر میکردم چه تصویری داشتن اون تصویر رو اول بایستی در متون پیدا کنیم این رو زحمت داره ولی باید اول از راز متودیک روش روشی باید اینا رو پیدا کرد بعد از اینکه که ما این رو پیدا کردیم حق داریم و میتونیم به اتیمولوژی بررسی یا بی زبان واژه بپردازیم تا اینو پیدا نکردیم این کار غلطه یعنی فقط بریم لوی گرامر رو سرخونه فقط بگیم آقا این واژه از این س... س... چیز میشه مشتق میشه این اینا به مفاهیمی می میبینید که از ما مفاهیم روز استفاده میکنیم سعی میکنیم ب... که آقا این معناش همینه که ما امروزه از این فکر میکنیم این غلطه ما اول بواسطه تصویری تصویر. رو که اونها از هم پدیده داشتن اول روشن بکنیم, روشن بکنیم. بعد بعدش روشن. بریم سراغ اتیمولوژی ریشه یابی و تبارشناسی در واقع باید یه،, یه خانه رو مشخص کنیم که به چه شکلیه بعد بریم داخلش که ببینیم تو این خونه چه اسبابی و چه آره، موازمی هست نه, نه، باید اول تصویر رو اینا چه تصویری از این پدیده داشتن, داشتن، درسته. چه تصویری مثلا از خونه د در ذهنشو در ذهنشو درست چه تصویر از آسمون داشتن چه تصویر از فرانچیز و فرانچیز دوستم درسته بعد از اینکه که این تصویر رو ما پیدا کردیم اون وقت حق داریم اینجا میبینیم که این تصویر رو اینها از گوهر مایه‌ای که در مادر هست درسته. این مایه این آب چه در ذهدانش چه در شیرش اینها اساس تحب بردنده که مایه تخمیر میکنه تخمیر میکنه، بله تخمیر میکنه، بله. ماست رو میبنده، شکل میده درسته. پس این خیلی مهم بوده مهمه. بله. آره. اینه که ما اول این تصویر رو تو اندازه روشن, روشن کردیم حالا میریم سر طراغ واجه آره. این واژه در پهلبی گوهره گوهر درسته جوهرم از همو مدای جمالی بله جوهرم از همین گرفته شده برای بله دیگه گوهر جوهر همه این باشه درست حالا این گوهر چی بوده حالا دیگه برامون روشنه چرا برای خاطر این که این گایا ببین دو نوع دو امکان داره یکی گایا ترا هر همون هر ترا ببین واژه مثل تتای یونانی نوشته میشه بله این واژه به شیوه های مختلف خونده میشه در زبان امروز ما این چی بوده مثل میبینید هر شده در لات در پهلوی گو هر شده هر, هر. این هر یعنی زن یعنی هرا مثل البرز هره برزه این ماه این زن برزه یعنی بران متعالی چونکه که البرز یعنی سیمرغ متعالی یعنی زن خدای مدباره. زن خدای بلند متبولند. بلند بلند, بلند. بلند. آره بلد. آره اون وقتی اینی که این حالا گیا حرا یا گاو حرا گیا یعنی زندگی همون جی بلند. از جی هم از همون میاد آره یعنی حرا چون که معناه مثل کلمه حروم مثلا ببین در چیز در عوستا و اونجه ها به به کشورهای زن خدایی هروم میگوین به یونان روم و هروم هروم میگفتن چون که فکر میکردن اونجا هم زن خدایی زن خدای پس بنابراین مثلا میگن سلم از کشور رومه خیال میکنن اینا یعنی از یونان و روم در صورتی که این نیست در شمال ایران این سرزمین هایی بوده که این اونجا هم زن خدایی بوده مثل ایران اون وقت اونجاها رو میگفتن هروم حالا <تصفيق> ها... کلمه خیلی ارومیه همین هارومه درسته درچه چاو ارومیه اروم همون هاروم نکات دقیق می‌بینید اینی که گایا هاروم گایا هرا یا گاو هرا هر دوتا معنیش که شده گوهر یعنی زندگی از چی از نه یا از زن چون که این هرا هم معنی داره هم اون زن داره درست. یعنی زندگی هم معنای زهتان داره چون نه مرازفتون داره و اصل پیدایش نه اینه که یعنی زندگی در زهتان زندگی, زندگی از زهتان یعنی اثر چشمه درست. درست درست این مایه چیج در زهتان دیگه در زهنه در پس بنابراین گوهر چیه گوهر اون چیزی که مایهیست ما که سج... در ذهنانه که ما اینجا باید. که فردوسی خوب میاره میگه گوهر مایه داره متوجه هستی اینه که ما اینجا به راحتی متوجه است. چونکه چون که این گوهر خیلی مهمه چون که مثلا در داستانهای بهرام گور ما بارها با این سیمر روبرو میشیم که با دخترهاش هست. باید دخترش رو به این بهرام گور بهرام گور نیست اینجا داستان بهرام خدای ایرانه ولی اینجا به عنوان بهرام گور دا توی داستان اومده وقتی این چی میشه این میشه با ب... بینید این پیر این پیر پیرموهان گوهرفروش پیر گوهرفروش گو بله دا... ما وقتی خیلی مثلا توی حافظ اینجاها گوهرفروش میاد این گوهرفروش معنیش یعنی چون که دیگه اسم این خدایان نرینه ساخته شده بودن برای خاطر اینکه که اینها بگن که اینها خدایان مادینه بودن می گفتن گوهر درسته. در صورتی که همون واجه گوهره همون واجه هم زن خداست گوهره. هره زن خداست بعدش اینها گوهر خروش شدن حالا این نقطهی که ما اینجا واجهی چون که این گوهر در فرهنگ ایران خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه با این شعر فردوسی میتونیم خیلی از نکات رو برای خودمون روشن کنیم درسته, درسته. خیلی مطلب،, مطلب خیلی جالبی بود هم درباره اون ترکیب این ستا یعنی هنر و نجاد و گوهر هم معنایی که فردوسی به هر کدوم از داده بود و همین که در در آخر از همه اینا گوهر رو مایدار میدونه و از همه مهمتر میدونه و مشخص میکنه که این گوهر از, از مادره, از مادره. مادره. درسته. و, و این مایه زهدان او رو گوهر میدونه بله. نجاد نطفه مرده درسته. گوهر اون نطفه، چیز آب زنه که اینها که با هم ترکیب شدن اینها با هم انبازگی شدن انسان پیدا میشه ولی این دوتا این مایه هست که تخمیر میکنه آخری. که شکل میده به اون و این اصله چون که این تک تفکر زن خداییست حالا من اینجا خواستم فقط یه بحث کوتاهی در خیلی این خیلی, خیلی بحث زیبایی بود و بعضی وقتا آقای جمالی من خیلی تعجب میکنم که از این کسانی که مثلا شاهنامه رو میخونن و تفسیر میکنن بیشتر میپردازند به یک سری مثلا این که این کدوم بیت الهاقی بوده کدوم نبوده نمیدونم این گرده یا گرد یا گرده اصلا یک بحثایی میکنن اصلا معنی از شاهنامه روشن نمیشه اه در واقع چیزی دست آدم نمیاد خب خب هر کسی البته کار خودش رو میکنه ولی قضیه اینه که هنوز میدونید این روش تحقیقاتی رو که در آلمان به ویژه بله. روی میتولوژی بله. و داستانها کوهن کرده بله. این روش ها در کشورهای های و انگلیسی بله. اصلا باب نیست یعنی اینجور روش ها را در, در آلمان این بحث این با مثلا این بحث تراجدی و اینها در یونان اساس فلسفه قرار گرفته بله. و این را از یونان گرفتن و تپکر روی میتولوژی یونان در پیدایش فلسفه در آلمان فوق العاده موثر بوده در صورتی که در این کشورها میتولوژی رو به نحوی دیگه میخونن اینه که برای تحقیقات در میتولوژی ایران داستان های ایران باله. بایستی با روش تحقیقاتی رو که در آلمان فوق العاده گسترش پیدا کرده و اینهایی که در آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا تحصیل میکنن چنین ای ندارن یعنی رابطی میتولوژی رو با فلسفه نمیدونن این فوق العاده این بحث مهمه این رو البته یک بار دیگه به طور دقیق با هم بحث خواهیم کرد. خیلی متشکرم از این بحث بسیار جالبتون امیدوارم که در آینده بتونیم بحث هایی در زمینه شاهنامه بیشتر داشته باشیم که نقش این واجه هایی که ما به کار می‌بردیم در مشاهده کنیم که پیوندش با فرهنگ ما چی هست این برای ما خیلی مهمه اساس اصلا شاهنامه رو ما باید همیشه از نو بخونیم خانش تازه و فلسفه یعنی شیبه تفکر ایرانی چگونه بوده؟ که در شاهنامه مونده اساس کاره بله. اگر نه این بحث ملحقات و اینجور چیزا و تصیحات و اینها اینا بحث های بدویوک چیز اساسیه ولی اونها هم تصحیح و اینا رو بدون همطور که اینجا بحث کردیم روی گوهر بدون دانستان این مفهومات نمیشه تصحیح کرد اشتباه اینا خیال میکنن روی ملحقات تصمیم میکرن روی این معانی شاهنامه تصمیم میکرن اینا همشون کتاخبینیه برای خاطر که این که بدون اینکه شما مفهوم گوهر رو مشخص کنید باید معنای گوهر رو بحث کنید این کاملا به همون ب... ب... شیش میرسید بالا گوهر فریاضونیه و از تو چاله میافتید اصلا معناش از مرحله پرش میشید معنای اصویرو متوجه بله. نه اون،, اون صحبتی که شما کردید خیلی مهمه که آدم اول اون تصویر رو اونو پیدا میکنه بعد از روی اون تصویر میتونه برگرده به معانی واجه ها و وتون کار اساف اس اول باعث دی در این متونیک موجود در بعث در گزیده های زاد در روایات در یشت ها و فران یشت ها و اینا اول اون مفهوم رو پیدا کنید درسته ببینید اینها در باره مثلا گندم چه فکر میکردن درست در باره پران چه فکر میکردن؟ آب چه فکر میکردنست این بعد از اینکه که این رو کردید. کلامی این واژه رو بینشینید آها یعنی درست است آنالیز و تجزیه و بله، تحلیل به یعنی معنای این را بگید چید؟ یعنی در واقع الان تمام اونهایی که این شاهنامه را مطالعه میکنن اگر نفهمند که معنی واژه گوهرچیه و معنی واژه فرچیه این گوهر و فر که تو شاهنامه میخونن بی‌معنیه در واسهشون اساساً ببینید الان این تو دهن همه روشنفکران این واژه فرهمان به معنای کاریسما بود این به کلی غلطه اصلا این این ف... این مفهومی است که از زردشتیگری گرفته شده درسته به کلی این مفهوم ایرانی نیست این مفهومیه که تئولوژی زردشتی یا دونشناسی زردشتی که این فر را خدا میده یعنی آخوندا میدن یعنی مویدان میدن یعنی چه قدرت همین مسئله ولایت فقیه میشه یعنی قدرت دست آخوندد بله چون اینها فر... این اون وقتی شاهنامه چی میشه <تصفيق> میشه یک یه, یه،, <تصفيق> یه قلط نامه. نامه میشه پس بنابراین این شما این الان این واجه تو دهن او اومدن ترجمه کردم کاریسمای ببر رو به فرحمن یعنی یه واژه زردوشتی رو که اونم از اهورا مزدام این کاریسمایی رو که ببر میگن چیزی نیست, نیست. ولی اینا اون ببینید قلط در قلط بعدش این قلط رو در قلط رو اومدن به فرهنگ ایران نسبت میدن شوب با اعلام میشه اینه که شما فرهنگ ایران به کلی واژگون و سرنگون میشه وقتی میگم فرهنگ ایران اینجور بوده تمام ذهنیات غلط به عنوان فرهنگ ایران مشکوک میشه آقای جمالی شما کی متوجه شدید که اون تصویر اولیه رو باید از شاهنامه به دست آورده چند ساله این رو بحث بله بحث بله بله چون که این بحث ها خیلی دامنه داره, دامنه داره بله. بهتره <تصفح> که ما نکته به نکته روشن بله درسته میدونید بهتره هر مثلا امروز امروز متوجه این شدیم که این گوهر رو فر رو نجات و هنر چه رابطه‌ای با هم دادن بله و این در شاهنامه خود این مثلا بحث رو این بله. خیلی مفصل فصالت بله. ولی ما همین سه تا نکته رو که الان متوجه شدیم خیلی به ما یاری میده که شاهنامه رو بله با این از اول بخونیم حالا با به مفاهیم و اصطلاحات دیگه کم کم می‌خوایم خیر خیلی متشکرم آی جمالی آه... تا بحث دیگه تا بحث شبتون خوش